قصه های یوگوسلاوی نویسنده نادا چورچیا پرودانوویچ مترجمان کامیار و محیار نیکپور ارائه شده از کانال تلگرامی هزار افسان به مدیریت محمد جواد بوستانی گوینده مریم موجی سلام به همه شما شنوندگان خوب و عزیز کانال هزار افسان. امروز هم با یک داستان زیبای دیگه در خدمتتون هستم بریم که با هم دیگه این داستان رو بشنویم این داستان شهزاده و قدختر اسمش است. روزی روزگاری پادشاهی بود که تنها یک پسر داشت چون پسر جوانی برومند شد روزی به قصد شکار از کاخ بیرون رفت و راه خودش رو در جنگل گم کرد. اون در میان جنگل به راه افتاد و رفت و رفت تا به یک کشور دیگه رسید. در اونجا کلبه ای رو دید که پیرمردی در اون زندگی می کرد. موهای سفید پیرمرد تا زمین می رسید و ریش بلندش رو به کمرش بسته بود. شاهزاده پیشش رفت و گفت روز به ای پیر محترم روز به پسرم چطور به اینجا اومدی؟ من به قصد شکار بیرون اومده بودم راه خودم رو گم کردم و بعد از مدتی سرگردانی به اینجا رسیدم و شما رو دیدم. آیا حاضری پیش من بمونی و خدمت منو بکنی ؟ بله میمونم. پیر مرد گفت: «بس بسیار خوب خوبت تو رو پیش من راهنمایی کرده. تو سه سال به من خدمت می کنی. اگر در همه این مدت به خوبی و درستی خدمت بکنی، در پایان سه سال برات زن می گیرم و خونه ای آماده می کنم. بعد از این گفتگو، شاهزاده جوان به عنوان خدمتکار در خونه پیرمرد موند. فردا صبح پیرمرد تازیانه بهش داد و دستور داد تا با اون بر آگرد دریاچه که در اونجا بود بکوبه. کار اون در همه روز، این بود که تازیانه رو بر ساحل بکوبه و بکوبه اون شب وقتی شاهزاده به کلبه برگشت پیرمرد ازش پرسید آیا برای من خدمتکار خوبی بودی؟ شاهزاده جواب داد بله بعد نشستند و شام خوردند و بعد خوابیدند. بام داده روز بعد پیرمرد باز هم به شاهزاده دستور داد که تازیانه رو برداره و به کنار دریاچه بره و در اونجا به نگهبانی بیسته. شاهزادی جوان رفت. دور دریاچه گام میزد و پشت سرهم تازیانه را بر ساحل میکوفت. نیمروز چشمش به گروهی از کوها افتاد که در پایین پرواز میکردن و به دریاچه نزدیک شدند و در اون فرود اومدند. اونها جامعه سپید خودشون را از در آوردند و در آب شنا کردند. بعد دوباره اونها را پوشیدند و به پرواز در و از اونجا رفتند. اون شبم وقتی شاهزاده به کلبه برگشت پیرمرد ازش پرسید خب بگو ببینم برای من خدمتکار خوبی بودی؟ پسر شاه در جوابش گفت بله بودم. آیا چیزی هم در دریا چه دیدی؟ بله دسته‌ای از قوها رو دیدم. دیگه چه دیدی؟ دیدم که اونها لباسهای سپید خودشون رو از تن درآوردند و اونها رو کنار دریاچه گذاشتند و برای آبتنی به دریاچه رفتند بعد دوباره بیرون اومدن و لباسهاشون رو پوشیدند و به پرواز درومدند و رفتند پیرمرد گفت بسیار خوب بعد نشستند و شام خوردند و رفتند که بخوابند بامداد روز بعد وقتی از بیدار شدند پیرمرد به شاهزاده گفت امروز سومین سال خدمت توه باز هم باید به کنار دریاچه بری و در اونجا به نگهبانی بیستی وقتی قوها برای شنا در کنار دریاچه فرود اومدند و لباسهاشون رو از تندرو رو بردند و اونجا گذاشتند به دریاچه برو و سعی کن توجه اونها رو از ساحل به جای دیگری منحرف بکنی بعد لباسهاشون رو بردار و برای من بیار اگر دلت میخواد شادمان باشی و همیشه خوشبخت باشی به اونچه که گفتم عمل کن و سعی کن که وظیفت رو هم به خوبی انجام بدی. شاهزاده جوان تازیانه رو برداشت و به کنار دریاچه رفت و مثل روزهای پیش شروع کرد به تازیانه زدن. وسطای تا های روز های سپید دوباره پایین اومدند و به دریاچه رفتند. موقعی که اونها سرگرم شنا و بازی بودند، شاهزاده جوان به سمت لباسهاشون رفت و اونها رو آروم برداشت و به کلبگی پیرمرد بود اما شگفتا قوها به چهره دخترانی زیبا در اومدند پیش پیرمرد رفتند و ازش خواستند تا لباسهاشون رو پس بده اون لباس همه رو پس داد جز لباس زیباترین اونها رو که پیش خودش نگه داشت و ازش خواست تا در کلبگی اون بمونه دختر دیگه لباسهاشون رو برتن کردند و به صورت های سپید در آمدند، پرواز کردند و رفتند. پیرمرد شاهزاده رو به پشت کلبه برد و گفت این قو از آن تو. این هم لباس اون. این کیسه پر از زر و گوهرهای گرانبها هم جهیزی اون. مراقب باش که لباس قو رو همیشه از زن دور نگهداری. اگر روزی اون رو به دست بیاره دوباره به شکل قو درمیاد، تو رو میگذاره و پرواز میکنه و هم میره و تو دیگه نمیتونی اونو پیدا کنی. شاهزاده پیرمرد تشکر کرد و لباس کوچک و ظریف رو تا کرد و زیر پیراهن خودش روی سینش گذاشت. کیسه زر و گوهر رو هم بر دوش انداخت، دست زنش رو گرفت و شروع به حرکت کرد. پیرمرد اون دو نفر رو تا آخر جنگل راهنمایی کرد و بعد راه رو نشونشون داد و برگشت. شاهزاده زنش خیلی زود به خونه خودشون رسیدند سلطان و شهبانو از دیدن پسرشون که فکر میکردند مرده خیلی خوشحال شدن شاهزاده براشون تعریف کرد که چطور خدمت پیرمرد رو کرده و دختر قور رو پیدا کرده بعد لباس قور رو بهشون داد و از مادرش خواست که اون رو نگه داره و هرگز اون رو در دسترس همسرش نگذاره چون اگه دختر اون رو بپوشه به صورت قو میاد و پرواز میکنه و میره و دیگه نمیتونن اونو رو پیدا کنن. شاهزاده جوان با همسر زیبای خودش زندگی خیلی خوش و رو آغاز کردند. روزی شاهزاده به شکار رفت و زنش با مادرش در خونه تنها موندند. زن به شبانه گفت: مادر تو خدا لباس سفید منو بده یه دقیقه بپوشم. قول میدم که از خونه بیرون نرم. ولی اگه اونو نپوشم میمیرم مادر شوهر از دادن لباس به عروسش خودداری کرد چند روز گذشت شاهزاد یه جوان دوباره به شکار رفت زنش بشه مادر شوهر اومد و با التماس بهش گفت مادر تو رو خدا لباس منو بهم بده قسم میخورم که از خونه بیرون نرم فقط بذار یک لحظه اونو بپوشم اگه یک لحظه اون رو برتن کنم بسیار زیباتر از اینی میشم که الان هستم مادر شوهر این بار هم لباس رو بهش نداد بار سوم که شاهزاده به شکار رفت و همسرش با مادرش تنها موند دوباره بنای خواهش و التماس گذاشت مادر لباسم رو بده بپوشم تو رو به جون پسرت خواهش منو به زمین ننداز قول میدم که یک قدم از کاخ اون طرفتر نرم اگه اون رو به من بدی بسیار زیباتر از این میشم که الان هستم مادر شوهر این بار قول عروسش رو باور کرد و لباس رو بهش داد. همین که دختر قو اون رو برتن کرد به صورت قوی در اومد و گفت خدا حافظ شما مادر منو باید در کوه بلور پیدا کنید. بعد به پرواز در اومد و ناپدید شد. اون شب وقتی شاهزاده به خونه برگشت مادرش بهش گفت که چطوری همسرش اون رو فریب داده و به التماس و خواهش لباسش رو ازش گرفت و پرواز کرده و رفته. جوان بعد از شنیدن این داستان خیلی ناراحت شد و آرزوی مرگ کرد. اسبش رو زین کرد و بر اون نشست و از جنگر گذشت. خودش رو به کلبه پیر که رسوند. وقتی پیشش رفت، هیچ چی نگفت که کیه و از کجا میاد. روز بخیر ای پیر گرامی، روز بخیر پسرم، چه تصادفی تو رو به اینجا آورده؟ اومدم از شما بپرسم که کوه بلور کجاست؟ پسرم، من سرور و سلطان سی و دو باد هستم. اگر کوه بلوری در این جهان باشه، بادهای من جای اون رو می و تو رو به اونجا می برند شب که شد، بادی سفیر کشان، اومد و به پیرمرد گفت شب بخیر سرور و سلطان من. شب بخیر باد زیر فرمان من. آیا تو کوه بلور رو در گوشه ای از این جهان دیدی؟ نصر برم. من چون این کوهی رو ندیدم. بعد باد دوم اومد و گفت شب بخیر ای شاه بادها. شب بخیر باد فرمان بر من. تو کوه بلور رو در جایی دیدی؟ نصر من. من اون رو ندیدم. اما شنیدم که چون کوهی در جایی هست. بعد از اون باد شمال فریاد کنان و زوزکشان طوری که درختار رو تا روی زمین خم می کرد اومد. و گفت، شب بخیر شه باد من، شب بخیر باده فرمان بر من، آیا تو در این دنیا کوه بلور رو دیدی؟ بله دیدم و الان دارم از اونجا میام، پس این مرد رو بردار و فردا به اونجا ببر. صبح باد شمال بلند شد و شاهزاده رو که هنوز در خواب بود بردوش گرفت و با خودش برد و اون رو در پای کوه بلورین بر زمین نهاد و رفت. وقتی شاهزاده از خواب بیدار شد و چشم باز کرد اطراف خودش رو نگاه کرد فهمید که اون رو به پای کوه بلور بردن. از جاش بلند شد و سعی کرد که از کوه بالا بره به هزار سختی و دشواری نیمی از کوه رو بالا رفت اما در نیمه راه سر میخورد و دوباره به پایین میافتاد و باز بالا می‌خزید و می‌لغزید و به پایین میافتاد. شاهزاده بالاخره بعد از تلاش بسیار، بسیار کند و آروم بالا رفت و خودش رو به ستیق کوه رسند. در اونجا کلبهی دید که پیرزنی در اون نشسته بود. پیشش رفت و گفت روز بخیر ای پیر زن مخترم روز بخیر پسرم خدا پشت و پناهت باشه کدوم بخت تو رو به اینجا آورده؟ شاهزاده در جواب گفت نه جان، منو بخت و اقبال به اینجا نیورده من دنبال قودختری میگردم. شنیدم که اون در کوه بلوره. آیا شما میتونید بگین که اون کجاست؟ آخه اون کودختر زن منه. آه پسر جان، خوب جایی اومدی. من در اینجا سیصد ست دارم که همه مثل همن. من همه اونا رو پیش تو میارم. اگه تونستی همسرت رو در بین اونها بشناسی میتونی دستش رو بگیری و برداری و با خودت ببری. اما اگه نتونستی اونو بشناسی، میکشمت. شاهزاده از این تهدید کوچکترین ترسی به دلش راه نداد. اون انقدر شیفت و دلدادی قودختر بود که تصمیم داشت یا اون رو پیدا کنه یا جانش رو در راهش پدا کنه. پیرزن در شاخی دمید. خیلی زود دسته ای از گوها، دسته بزرگ پرواز کنن به اونجا اومدن، و صدای به هم خوردن بالهاشون در فضا پیچید وقتی بر زمین نشستن به صورت دخترانی زیبا در آمدند و در یک خط صف بستن پیرزن جوان رو پیش اونها برد و در برابر اولین دختر ایستاد و ازش پرسید این دختر همسر توه؟ نه، این نیست این یکی؟ نه، این هم نیست این، نه این یکی چطور؟ این هم نیست. بالاخره پیرزن و شاهزاده در مقابل دختری رسیدند که زیباتر از همه بود. و چون پیرزن از شاهزاده پرسید آیا این یکی هست؟ او دختر لبخند گوتایی بر لب آورد و چشمکی هم به جوان زد. اما سعی کرد که پیرزن متوجه لبخند و چشمکش نشه. بله این زن منه. اینه؟ بله اینه باز میپرسم، اینه بله پیرزن با دست خودش اشاره به دختران دیگه کرد و اونها دوباره به جل قو در اومدند و پرواز کردند و رفتند تنها همسر شاهزاده در اونجا موند و آهسته در گوشش گفت اگه کسی غذایی برات اوورد مباده اونو بخوری منتظر باش تا من برات غذا بیارم بعد پیرزن پیش شاهزاده اومد و گفت اگه اونو نشناخته بودی کشته می شدی. اما هنوز هم این دختر مال تو نیست. اول باید در اون مدتی که پیش تو بود خوب نگهداری و مراقبتش می کردی. حالا باید سه کار برای من انجام بدی تا اونو بهت بدم. کوهین رو که در اون سوی این کوه هست می بینی، برو و تا شب اون رو به کوه بلور بیار. شهزادی جوان بیل و کلنگی برداشت و به کوهی که پیرزن نشونش داده بود رفت و شروع کرد به کندن اونجا. اما چطور ممکن بود که در یک روز با دست تنها کوهی رو کند و روی کوه دیگری برد؟ جوان نشست تا یک لحظه استراحت کنه. آهی از تعثر و تعصف کشید. زور پسرک خوردسالی پیشش اومد و نهارو برد. شاهزاده گفت من هیچ غذایی رو از دست تو نمیگیرم و اون رو پس فرستاد بعد از ساعتی همسرش پیشش اومد و برای اون غذا اوورد و چون اون رو خیلی غمگین و ناامید دید گفت همسر عزیزم ناراحت نباش نهارت رو بخور و دراز بکش و بخواب وقتی به کل به برگشتی پیرزن ازت میپرسه خدمتکار آیا وظیفت رو انجام دادی تو با خشم پاسخش رو بده بگو بله انجام دادم اما پیرزن حالا زود باش غذای منو بده من اونقدر گرستم که حتی میتونم تو رو هم بخورم شاهزاده نهارش رو خورد و بر زمین دراز کشید و به خواب رفت زنش با عجله پیش خواهرش رفت و بدون اون که پیرزن بفهمه از اونها کمک خواست کوها بادها رو به یاری خوندند و بادها همه با هم در کوه دمیدند و اون رو به سمت کوه گرورین حرکت دادند. شب که شد، شاهزاده جوان از خواب بیدار شد و وقتی دید که کوه رو بردند از جای خودش بلند شد و بیل و کلنگش رو برداشت و پیش پیرزن برگشت. وقتی به کل رسید فریاد زد. شب بخیر پیرزن. شام من آماده است؟ خدمتکار. اول بگو ببینم. کارت رو انجام دادی؟ شاهزاده با خشم فریاد زد. بله، انجام دادم، زود با شامم رو بردار بیار، نمیدونی چقدر گرستم، اونقدر گرستم که میتونم تو رو هم بخورم. پیرزن خیلی تعجب کرد و خیلی با عجله شام شهزا در آماده کرد و مقابلش گذاشت. روز دوم پیرزن بهش گفت، امروز باید به اون کوه که میبینی بری و همه درختهایی رو که توی جنگل روی اون کوه میبینی بندازی اونها رو بشکنی، دسته بکنی و به اینجا بیاری شاهزاده تبری برداشت و به سمت جنگر رفت اون با تبر خودش به جون درخت ها افتاد اما تا نیمه روز با همه تلاش و کوشش فقط سه تا درخت رو تونست قتع کنه خیلی ناامید شد روی کنده درختی نشست و سر در گریبان غم فرو برد مگه ممکن بود اون به تنهایی همه درختهای جنگر رو تا شب بندازه بس حتی روز باز همون پسرک براش نهار رو اما شاهزاده اون رو با نهارش برگردوند و گفت من هیچ غذایی رو از دستتون نمیگیرم. بعد از چند دقیقه همسرش اومد و نهار رو و چون اون رو سخت ناراحت و غمگین دید گفت همسر عزیزم. ناراحت نباش. نهارت رو بخور و دراز بکش و بخواب. وقتی شب شد همون کاری رو بکن که دیروز کردی. شهزادی جوان نهارش رو خورد و دراز کشید و خوابید. زنش هم برگشت و های دیگر رو به کمک طلبید. و اونها بادها رو به یاری فرا خوندند تا درختان جنگل رو بندازند. بادها در مدت کمی خواهش اونها رو انجام دادند. دخترا هم درختار رو شکستند و همه اونها رو به کوه بلور بردند. شب که شد، شاهزاده از خواب بیدار شد و چون دید که همه درخت افتادن تبرش رو برداشت و به سمت کلوگی پیرزن رفت. وقتی به اونجا رسید با خشم فریاد زد. شب بخیر پیرزن. شام من آماده است. شب بخیر خدمتکار. آیا کاری رو که بهت گفتم انجام دادی؟ شاهزاده فریاد زد. بله انجام دادم. بهتر به جای این سوالا، هر چه زودتر شامم رو بیاری. وگرنه تو رو میخورم اونقدر گرستم که حتی این کار رو هم میتونم بکنم پیرزن بلند شد و با عجل شامش رو آماده کرد روز سوم پیرزن به شاهزاده گفت امروز باید به کشزاری که در اون طرف میبینی بری گندم ها رو درو کنی خرمن به گوبی و گندم ها رو به آسیا ببری و آرد کنی و آرد رو پیش من بیاری تا من بتونم برای تو نون بپزم و اون رو برای راهت بذارم شاهزاده داسی رو برداشت و به کشتار رفت زور باز همون پسرک براش غذا او برد ولی شاهزاده اون رو برگردون بعد همسرش براش نهار برد و اون رو خورد و خوابید. زنش همه ی قودختران رو پیش خودش خوند اونا هم گندم رو درو کردند و به زمین خربنکوبی بردند و از بادها خواستند که به کمکشون بیان بادها با آخرین نیروی خودشون بر اونها وزیدند و در یک چشم به هم زدن دانه ها رو از خوشه جدا کردند و بعد اونها رو به آسیا بردند و آرد کردند شب که شد شاهزاده مثل روزهای قبل از خواب بیدار شد و به در کلبه پیرزن رفت و داد زد شب بخیر پیرزن من سومین کاری رو هم که گفته بودی انجام دادم دخترانت رو به آسیا بفرست تا آرد رو بیارن و تو با اون نون بزرگی برگی من بپزی پیرزن که از جوان خیلی ترسیده بود در شاخ خودش دمید دخترکان اومدند و اون بهشون دستور داد تا برند و آردها رو از آسیاب بیارن و نون بزرگی بپزند همسر شاهزاده اون رو پیش خودش خوند و در گوشش گفت امشب پیرزن تو رو به استبلی میفرسته که پر از اسبان و گاوان و آدمیانه. اونها به تو حمله می کنن. اما نباید به ترسی. باید با اونها نبرد کنی و فریاد بزنی. پیرزن شاهزاده رو بعد از خوردن شام پیش خودش صدا زد و گفت هنوز یه کار دیگه هم هست که باید بکنی. امشب باید مراقب چار پایان من باشی. اگر صبح همه اونها بیکم و کاس در جای خودشون نباشن تو کشته میشی اما هر وقت همه سالم بودن تو نانی برای سفر و اسبی برای بردنت به دست خای آورد و میتونی قودوغتر رو هم برداری و با خودت ببری شاهزاده به استبر رفت نیم شب گاوها و اسبان و مردان یک دفعه فریاد زنان و شیعه کشان به اون حمله کردند ولی شاهزاده با فریادی بلندتر پاسخشون رو داد ساعتی چهارپایان با شاهزاده نبرد کردند و چون شکست خوردند اون رو به حال خودش رها کردند صبح که شد شاهزاده به در کلبه پیرزن رفت و فریاد زد و با خشم بسیار بهش گفت که چرا در رو براش باز نمیکنه. پیرزن ترسید و با خودش گفت وای بر من اون بسیار نیرومندتر و خشمینتر از منه، بهتره تا من رو از پادر نعی ورده بگذارم بره. پیرزن در رو بروی اون باز کرد. شاهزاده داد زد، نون من رو پختی؟ پیرزن که از ترس مثل بید میلرزید جواب داد، بله، پختم. شاهزاده با صدایی خشمینتر فریاد زد، پس اون رو به من بده که می خوام برم. وقتی پیرزن از گل به بیرون رفت، همسر شاهزاده به اونجا اومد و بهش گفت پیرزن اسبان بسیاری به اینجا میاره. در میان اونها همونقدر که اسب زیبا و نیرومند هست، اسب زشت و لاغر و مردنی هم هست. تو باید زشتترین و کوچکترین اونها رو برگ سواری خودت و من انتخاب کنی. پیرزن برگشت و نون رو اوورد و مقابل جوان گذاشت. بعد رفت و اسبهای بسیاری را از استبل به اونجا آورد. همه رو در یک صف در برابر شاهزاده نگه داشت و بهش گفت: میتونی از بین اینها دو اسب انتخاب کنی، یکی برای خودت، یکی هم برای همسرت. شاهزاده دو اسب رو که کوچکترین و زشترین اسبها بودن انتخاب کرد. وقتی اون و همسرش بر اون دو اسب سوار شدن، دو بال بزرگ بر دوش هر یک از اون دو روید و اونها به پرواز در اومدن و اون و همسرش رو به کاخ شاهزاده بردند شاهزاده و همسرش سالیان دراز با هم به خوشی خورمی زندگی کردند این هم از داستان زیبای شاهزاده و دخترکان قوه روز روزگار خوش سفر به دنیای پر رمز و راز افسانه ها پسته هایی از غول ها و کوتوله ها ماجراهایی از جادوگرها سفر به سرزمین های جادویی و تلسم شده رفتن به دنیای پریان ماجراجویی در سرزمین های زیر دریا